جزر سرزمین پریان صبح روز بعد آلوریک خسته و خشمگین از جستجوی شبانه اش به دنبال لیرازل به نزد جادوگر زیروندرل در برج رفت تمام شب کوشیده بود رؤیایی که لیرازل را فراخوانده بود و پناهگاه لیرازل و را حدس بزند اطراف جویباری را که لیرازل در کنار آن سنگ ها را و استخری را که در کنار آن ستارگان را نیایش کرده بود، جستجو کرده بود، نامش را در همه برچ ها صدا زده و در گستری تاریکی فرایش خانده بود و هیچ پاسخی جز پشواک نشنیده بود و بنابراین سرانجام به نزد جادوگرزی راندریل آمده بود، گفت کجا رفت؟ و بیش از این نگفت تا پسرک از حراسش آگاه نشود، اما اوریون میدانست. زیروندرل با سوگواری سرش را تکان داد و گفت به دنبال برگ ها به دنبال کمال زیبایی اما آلوریک به بیشتر از سه کلمه اول او گوش نداد با همان بیقراری راست از اتاق بیرون آمد و از پله ها پایین و به درون بامداد طوفانی رفت تا ببیند آن برگ های شکوهمند به کدام سو رفته اند؟ و چند برگ که پس از رفتن گروه شاد دوستانشان به شاخه های سرد آویخته مانده بودند، اکنون در هوا شناور بودند. تنها و دیر هنگام می رفتند. و دید که به سوی جنوب شرقی به سوی سرزمین پریان می روند. سپس به شتاب شمشیر جادوییاش را با غلاف پهن چرمیش به کمر بست و با ساز و برگ اندک، با شتاب به دنبال آخرین برگ در دشت ها رفت. شکوه پاییزی برگ ها می‌کرد. میکرد. همان گونه که نقصذتی مردمی در آخرین روزهای حیاتش شکوهمند و شکست خورده تمامی رفتارهای انسانها را هدایت می کند. و بدین ترتیب به دشت های بلند رفت که سبزهایش در جاله ها به رنگ خاکستری درآمده بودند، و هوا در نور خورشید میدرخشید و از آمدن آخرین برگها شادی میکرد اما انگار در صدای گله ها گونه ای افسردگی نهفته بود. در آن بامداد آرام درخشان که باد شمال غربی در آن میوزید، آلوریک بی آرام میرفت و هرگز شتاب کسی را که ناگهان چیزی را گم کرده است از دست نمیداد. حرکتهایش همچون هوای متلاتم چابک بود، تمام روز به افق روشن گسترده جنوب شرقی به جایی چشم دوخته بود که برگها راهنماییش می‌کردند می و شامگاهان منتظر بود کوه‌های سرزمین پریان را محکم و بیدگرگونی ببیند که رنگهای روشن فراموشم نکنه آنها با هیچ نوری که ما بشناسیم روشن نمی شود. با بیتابی ایستاد استاد تا چکادهای آنها را ببیند اما هیچ کدام در نظرگاهش ظاهر نشدند و سپس خانه چرمساز پیر را دید که غلاف شمشیرش را ساخته بود و سالهایی را به یاد آورد که از آن غروب گذشته بود همان غروب که برای نخستین بار این خانه را دید هرچند هیچگاه نمیدانست چند سال بوده و نمی توانست بداند چرا که تا کنون هیچ کس محاسبه دقیقی برای تخمین روند زمان در سرزمین پریان انجام نداده است سپس یک بار دیگر با نگاه کوههای آبی روشن سرزمین پریان را جستجو کرد خوب به یاد داشت که کجا بودند در راستای خط راست درازی بودند که از نوک یکی از شیروانیهای های چرمساز می گذشت. اما هیچ نشانی از آنان ندید به درون خانه رفت و مرد پیر هنوز آنجا بود. چرمساز به گونه شگرفی پیر شده بود. حتی میز کارش هم بسیار کهنه تر شده بود. به آلوریک خوش آمد گفت. به یاد داشت که کیست؟ و آلوریک سراغ همسر مرد پیر را گرفت. گفت. مدت ها پیش در گذشت. دوباره پرواز پریشان آن سالها را حس کرد که در اندیشهش حراسی از سرزمین پریان جایی که به سوی آن میرفت پدید آورد. اما حتی یک دم هم نیندیشید که برگردد و حتی یک دم هم از شتاب بیتابش کاسته نشد. چند جمله رسمی برای تسلیت مرگ همسر مرد پیر گفت که مدتها پیش رخ داده بود. سپس پرسید: کوه های سرزمین پریان کجایند آن چکات آبی روشن؟ به آهستگی نگاهی بر چهره مرد پیر نقش بست که گویی هرگز آنها را ندیده است. درست مثل اینکه هرگز نامی از آنها نشنیده بود. پاسخ داد که نه نمیداند. والوریک و آلوریک دریافت که مرد پیر امروز هم همچون سالها پیش نمیخواهد از سرزمین پریان سخن بگوید. خب مرز چند گام آن سوتر بود؟ اگر نمی توانست را ببیند تا راهنماییش کنند؟ از مرز می گذشت و سراغ موجودات سرزمین پریان را می گرفت. مرد پیر به او غذا تعارف کرد و او تمام روز چیزی نخورده بود. اما آلوریک در شتابش تنها یک بار دیگر درباره سرزمین پریان پرسید و مرد پیر با فروتنی گفت که هیچ چیز درباره این چیزها نمیداند سپس آلوریک دور شد و به دشتهایی آمد که می شناخت جایی که به یاد آورد با مرز تار شفق تقسیم شده است و در همان دم که به دشتها آمد دید همه قارچهای سمی به یک سو خم شدند به سوی همان راهی که او میرفت چون درست همان گونه که درختهای خاردار به سوی مقابل دریا خم میشوند، شوند قارچهای سمی و هر گیاهی که ذره ای رمز و راز داشته باشد همچون گلهای انگشتانه و ماهور و گونه های ویجه ای از صعلب هرگاه در نزدیکی سرزمین پریان برویند به سوی آن خم میشوند بدین ترتیب پیش از شنیدن صدای موجها یا پیش از حس کردن تأثیر موجودات جادوین میتوان دریافت که در کنار دریا هستیم یا مرز سرزمین پریان و در بالای سرش پرندگان زرین را دید و حد زد که باید طوفانی در سرزمین پریان رخ داده باشد که آنها را از جنوب شرقی به این سوی مرز رانده باشد، هرچند بر هایی که میشناسیم باد شمال غربی میوزید و پیش رفت، اما مرز در آنجا نبود و آن دشت همچون همه دشت هایی که میشناسیم را پیمود و باز به زمین های کوهستانی سرزمین پریان، نرسید، سپس با بیتابی افزونی بر شتابش افزود، باد شمال غربی به پشتش میخورد و زمین اندکندک به رهنه و تنک و کسالت بار شد، بدون گل، بدون سایه، بدون رنگ، بدون هیچ کدام از موجودات سرزمین خودمان که در یاد آنها در ذهن ما میماند و هنگامی که دیگر در آنجا نیستیم، می توانیم در اندیشهمان تصاویری از آنها بسازیم. اکنون جادو از تمامی آن سرزمینها برداشته شده بود. آلوریک پرندهای زرین بر فراز آسمان دید که به سوی جنوب شرقی میشتافت و پرواز او را دنبال کرد به این امید که اندکی بعد کوههای سرزمین پریان را ببیند که گمان می‌کرد تنها با این مه سحرآمیز پنهان شدهاند. اما آسمان پاییزی هنوز درخشان و صاف و افق گسترده بود و هنوز کورسوی از های سرزمین پریان دیده نمیشد و از این موضوع در نیافت که سرزمین پریان واپس نشسته است اما هنگامی که در آن پهنه خالی که باد شمال غربی جارویش کرده بود درختی بهاری را دید که از شکوفه‌های سپید پوشیده شده بود و در پاییز هم زیبا و شکوفان مانده بود به یاد آورد که در کودکیش این درخت یک روز بهاریش را دلپذیر کرده بود و دریافت که سرزمین پریان آنجا بوده است و باید اغب نشینی کرده باشد تا کجا؟ نمی دانست آری درست گونه که تلعلوی روشنی بخش سحم امدهی از زندگی ما به ویژه در نخستین سالهای زندگی به دست پیام گوناگون که آرامش و رستگاری بر آنان باد از سرزمین پریان به ما میرسد، تمامی خاطرات کوچک و فراموش شده ما و بازیچههایی که روزگاری چون گنجینه ای عزیز داشته ایم و اکنون فراموش کرده ایم. از دشتهای ما به سرزمین پریان باز میگردند تا بخشی از راز آن شوند. این است تو آلوریک همین را میدانست. و این بخشی از قانون جذر و مد است که دانش میتواند اثر آن را در همه چیز بجوید چون این است که نور جنگل را میرویاند و جنگل زغال میسازد و زغال نور پس میدهد چون این است که رودها دریا را پر میکنند و دریا آب را به درون رودها میفرستد چون این است که همه چیز آنچرا که میگیرد پس میدهد حتی مرگ سپس آلبریک بر روی آن زمین هموار خشک بازیچه بچگانه ای را دید و به یاد آورد سالهای سال پیش چگونه میتوانست توانست بگوید چند سال؟ از آن او بود؟ بازیچه به گونه ای زمخت از چوب تراشیده شده بود و در یک روز بد اقبال شکسته بود و در یک روز ناشاد به دور انداخته شده بود و اکنون این شیء دگرگون شده ی تابناک که بخش جوان تخیلش باز شناخته بود نه تنها نو و شکسته که با شگفتی و شکوه و عشقی در پیرامون خود میدید که در آنجا افتاده بود از سرزمین پریان به جا مانده بود همچون اشیای شگفتانگیزی که پس از دور شدن دریا به شکل یک توده آبی کفالود بر پهنه ماسه های ساحلی بر جای میماند حامونه به جامانده از سرزمین پریان دلتنگ کننده و بی احساس بود. هرچند آلبریک پی در پی اینجا و آنجا اشیای کوچکی را میدید که در دوران کودکیش گم شده بودند و از میان زمان به درون منطقه بی زمان و بی ساعت سرزمین پریان افتاده بودند تا بخشی از شکوه آن باشند و اکنون با واپسکشی ناگهانی آن درمانده و متروک بر جایی مانده بودند. الهان قدیمی، ترانه های قدیمی، اسوات قدیمی نیز در آنجا پراکنده بودند و دم به دم زعیفتر می شدند. گویی نمی توانستند زمان زیادی در دشت هایی که می زنده بمانند. و هنگامی که خورشید غروب کرد، درخشش سرخ بنفشی در شرق که آلوریک برای زمین کمی غریب می دانست او را همچنان به پیش رهنامون شد، چون پنداشت انعکاس درخشش شکوه سرزمین پریان بر آسمان است. بنابراین به امید یافتن آن به پیش رفت، افق به افق و شب با تمام ستارگان یاور زمین فرا رسید و تنها آنگاه بود که آلوریک بیقراری آشفته را که از بامداد او را به پیش رانده بود کنار گذاشت. و خود را در شنلی که بر تن داشت پیچید غذایی را که در خورجین داشت خورد و در میان دیگر اشیای برجامانده از سرزمین پریان به خواب آشفته‌ای فرو رفت در نخستین لحظه‌های سپیددم از بیتابی بیدار شد هر چند مهی پاییزی تمامی پرتوهای نور را پوشانده بود آخرین بازمانده غذایش را خورد و سپس در میانه آن پهنه خاکستری به راه افتاد. اکنون دیگر هیچ صدای از موجودات دشتهای ما به گوشش نمی رسید، چون زمانی که سرزمین پریان آنجا بود، انسانها هرگز به آنسو نمی رفتند، و اکنون نیز هیچکس کس جز آلوریک به آن هامون خالی نمی رفت. او از صدای قوقلی قوقوی خانه های راحت انسانها فراتر رفته بود، و اکنون در میان سکوت غریبی گام بر می داشت که تنها گاه به گاه با فریادهای مبهم و کوتاه ترانه هایی می شکست که از پس نشینی سرزمین پریان بر جای مانده و اکنون از دیروز ضعیف‌تر بودند. و هنگامی که هوا روشن شد، آلوریک دوباره شکوه عظیم سبزی را در آسمان دید که جنوب شرقی را پوشانده بود، و بار دیگر گمان کرد بازتابی از سرزمین پریان است و امیدوارانه به دنبال آن به سوی افق بعدی شتافت. از افق بعدی گذشت و باز همان حامون خالی بود و هیچ اثری از چکادهای کوهای آبی روشن سرزمین پریان دیده نمیشد. آلوریک درست نمیدانست که آیا سرزمین پریان همواره بر افق بعدی میگسترد. و با درخشش خود ابرها را روشن میکند و هنگامی که آلوریک به آن افق میرسد آنجا را ترک میکند و یا اینکه روزها یا سالها قبل از آنجا رفته است اما همچنان پیش میرفت و سرانجام به جای خشک و بی آب و علفی رسید که بر آن چشم دوخته بود و مدتها بود تمام امیدش را بر آنجا گذاشته بود و از آن گستره تنها که تا مرز آسمان پیش رفته بود به دور دست ها نگریست هیچ نشانی از سرزمین پریان هیچ یک از سراشیب های را ندید حتی گنجینه های کوچک خاطرات بازمانده از واپس نشینی سرزمین پریان پژمرده بودند و اندک اندک به اشیای از زندگی هر روزه ما تبدیل می شدند سپس آلوریک شمشیر جادویش را از غلاف بیرون کشید اما هرچند آن شمشیر در برابر جادو توانا بود اما توان بازگرداندن جادویی را نداشت که رفته بود و هرچند شمشیرش را بارها تکان داد اما آن سرزمین خالی همچنان سنگی متروک خشک و گسترده باقی ماند کمی دیگر پیش رفت اما دران سرزمین صاف افق به گونه نامحسوسی همراه با او حرکت می‌کرد و هیچ یک از چکادهای کوههای سرزمین پریان ظاهر نمی‌شد و کمی بعد در آن پهنه خالی دریافت همچنان که دیر یازود هر انسانی باید دریابد که سرزمین پریان را گم کرده است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 ماجراجویی در سرزمین, های زیر, دریا. ماجر در سرزمین های زیر دریا همه اینها و بیش از اینها در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های صوتی